اصل هم و ترین نکته درباره کار پرستاری آن چیزی نیست که احتمالا فکرش را میکن ربطی به بالا و پایین کردن مریضا نظافت ندارد یا دارو و دستمال مرطوب و یا بوی همیشگی و محسوس مواد ضد عفونی کننده حتی این واقعیت هم نیست که اغلب افراد فکر می کنند. تنها کاری است که از دستتان برمیآید بلکه این واقعیت است که آدم وقتی تمام روز را کنار کسی می هیچ گریزی از حالتهای روحی او ندارد. حتی از حالتهای روحی خودش. از صبح که برنامه را به ویل گفتم، رفتارش خشک و سرد شد. البته طوری نبود که کسی از بیرون متوجه شود. فقط کمتر حرف زدیم و کمتر شوخی کردیم. هیچ چیزی در مورد مطالب روزنامه نپرسید. پس این کارو بکنی؟ چشمانش برق میزدند ولی از قیافش چیزی نمیشد خواند. شانه بالا انداختم بعد با تکید سرتکان دادم. واقعا وقتش شده. منظورم اینه که من بی هفت سال دارم. احساس میکردم جوابی که دادم کمی غیر مسئولانه و بچگانه است با دقت به صورتم زل زد از اوله آوارش منقبض شده بود. یکباره و به ترسی غیر قابل تحمل احساس خستگی کردم فکر میکردم باید عذرخاهی کنم ولی نمیدانستم چرا سری تکان داد و لبخندی زد خوشحالم که مشکلت حل شد بعد صندلی چرخدارش را به داخل آشپزخانه هدایت کرد از دستش عصبانی بودم تا الان پیش نیامده بود اینجور مورد قضاوت کسی قرار گرفته باشم انگار حالا که تصمیم گرفته بودم با دوست پسرم به سر و سامان برسم، معنیش این بود که توجه کمتری به او داشتم. مثل اینکه دیگر نمیتوانستم چیز مورد علاقه اش باشم، مایی دلخوشی اش باشم. البته این حرفا رو نمیتوانستم به خودش بگویم، ولی مثل خودش رفتار سردی در پیش گرفتم، به همان میزنی که خودش با من رفتار می‌کرد. رک و بگویم که کار سختی بود. بعد از ظهر در زدند. شتابان توی راه رو دویدم. داشتم ظرف می و دستم خیس بود. وقتی در را باز کردم با مردی روبرو شدم. کت شلوار سیاه پوشیده و ساک دستش بود. هم که مرد خواست چیزی بگوید تلاش کردم در را ببندم. آتانه گفتم او نه ما بودایی هستیم. دو هفته پیش دو نفر از شاهدان یهووه آمدند. و نزدیک پانزده دقیقه ویل را دم در پشتیگیر گیر انداختند. پادری جابجا جا شده بود و ویل نمیتوانست صندلی چرخدارش را برگرداند. وقتی سرانجام من در را بستم، داد کشیدن که او بیش از هر انسان دیگری باید بداند چگونه به زندگی پس از مرگ نگاه کند. مرد گفت: برای دیدن آقای ترینر اومدم. در را با احتیاط باز کردم. از روزی که در گرنت هاوس می میکردم، ندیده بودم کسی از در پشتی به دیدن فیل بیاید. فیل پشت سرم ظاهر شد و گفت اجازه بده بیاد تو. من ازش خواستم بیاد. بعد وقتی دید من همانطور بی حرکتی استادم اضافه کرد. کلارک مشکلی نیست. از دوستانه. مرد در آستانه در قدم گذاشت. دستش را جلو آورد و با من دست داد. گفت مایکل لولر هستم. همان موقع که دهان باز کرد چیزی بگوید، ویل بین من و او قرار گرفت و عمدن راه هر گونه حرف بیشتر را بست. میریم اتاق نشیمن. لطفا لطفاً قهوه درست کن. بعد هم دقایقی تنها مون بذار. حتما. آقای لولر لبخندی به من زد که کمی ناشیانه بود. بعد دنبال ویل به اتاق نشیمن رفت. دقایقی بعد که با سینی قهوه وارد اتاق شدم، داشتن در مورد کریکت حرف میزدند. صحبت در مورد بازی ادامه داشت تا اینکه دیگر دلیلی برای ماندن در اتاق نداشتم. دست روی دامنم کشیدم. صاف ایستادم و گفتم: خب، من میرم. ممنون لویزا. مطمئنید به چیزی نیاز ندارید؟ تنقلاتی چیزی؟ ممنون لئیزا ویل معمولاً لئیزا صدایم نمیکرد قبلا هم پیش نیامده بود که چیزی را از من مخفی کند. آقای لولر حدود یک ساعت ماند کارهایم را کردم بعد هم توی آشپزخانه بیکار نشستم. نمیدانستم آیا جسارتش را دارم گوش بیستم یا نه؟ اما نداشتم. نشستم و دوتا بیسکویت کرمدار خوردم ناخن جویدم و به وزوز وز آرام صدایشان گوش دادم برای پانزدهمین بار از خودم پرسیدم چرا ویل نخواست مرد از در اصلی خانه وارد شود به دکترها شبیه نبود یا حسابدارها شاید مشاور مالی بود از ظاهرش نمیشد چیزی فهمید مسلماً قیافه فیزیوتراپیستها کاردرمانگرها، یا متخصصین تغذیه را نداشت یا یکی از آن فوج افرادی که مقامات محلی برای بررسی وضعیت و مشکلات ویل به خانهاش میفرستادند. بیافه این افراد از دور داد میزد همیشه خسته به نظر می رسیدند ولی تر و فرز بودند و شوق زیادی در وجودشان بود معمولا لباس پشمی با رنگ ملایم میپوشیدند و کفش مناسب. سوار اتومبیل های دولتی خاک گرفته بودند که پر از پرونده و وسایل مورد نیاز معلولان بود. در صورتی که آقای لولر بی ام دبلیو سرمه مدل بالا داشت. بی ام دبلیو سری پنج پرقنداختش از نوع اتومبیل های دولتی نبود. سرانجام آقای لولر بیرون آمد. در کیفش را بست. کت روی دستش بود. حالا دیگر مسترب به نظر نمی رسید. به راهرو قدم گذاشت. ببخشید. دستشویی کجاست؟ راهنماییش کردم و ساکتیست است دادم. عصبی و بیقرار بودم. از دستشویی بیرون آمد. رو به ویل گفت: امری نیست؟ مایکل ممنونم ازت. ویل به من نگاه نمی کرد خب، پس خبر بده. آقای لولر گفت: توی همین هفته تماس میگیرم. ایمیل از نامه بهتره. بسته کم حالا. <تصفيق> بله. البته. در پشتی را باز کردم تا خارج شود. ویل برگشت و به اتاق نشیمن رفت. من هم آقای لولر را تا حیات بدرقه کردم و آرام گفتم. از راه دور اومدید؟ کت شلوارش خوش دوخت بود. شیک و گران قیمت. و با دوختی که داشت صاحبش را از بقیه متمایز می از لندن اومدم. متاسفانه باید برگردم. امیدوارم این موقعی بعد از ظهر ترافیک سنگین نباشه. خورشید در آسمان بالا بود و نورش چشم را میزد کجای لندن؟ خیابون رجنت. خیابون رجنت. <تصفح> چه خوب. آره، جای بدی نیست. مطمئنم بابت قهوه دو دوشیزه... لوئزه کلارک لحظه ایستاد و به من صلح زد کنجکاف بودم بدانم آیا بو برده که من تلاش کردم به هویتش پی ببرم کاری که نباید انجام می دادم دو به هر صورت ممنونم لبخند ماهرانش دوباره به چهرهرش بازگشته بود بعد هم سوار اتومبیلش شد و رفت. آن شب سر راه هم از خانه به خانه پاتریک سری به کتابخانه زدم می توانستم از کامپیوتر پاتریک استفاده کنم ولی خودم را موظف می دانستم اول اجازه بگیرم رفتن به کتابخانه برایم راحت تر بود نشستم و تایپ کردم مایکل لولر و لندن خیابان رجنت جستجو کردم در دل گفتم ویل خواستن توانستن است سه هزار و دویست وجود داشت. ستای اول می گفت که مایکل لولر وکیل متخصص در امور وسیعتنامه انحصار وراست وکیل دعاوی. آدرس هم همان خیابان بود. دقایقی به صفحه کامپیوتر زل زدم. بعد دوباره اسمش را نوشتم و دنبال عکسش گشتم. خودش بود. کت شلوار سیاه پوشیده و در میز گردی شرکت کرده بود. مایکل لولر متخصص در امور وسیدنامه و انحصار وراست همان مردی بود که ویل یک ساعت به او خلوت کرده بود. آن شب به خانه پاتریک نقل مکان کردم. در فاصله زمانی یک ساعت و نیم بین تمام شدن کارم و رفتن پاتریک به تمرین. به جز تخت خواب و پرده کرکرهی همه وسایلم را بردم. پاتریک با ماشینش آمد و وسایلم را بار زد. دوبار آمد و تمام وسایلم را برد. فقط کتاب های هم در همان اتاق زیر شیروانی ماند. مادرم گریه می کرد. فکر می کرد یک جورایی بیرونم کردند. پدرم می گفت عزیزم محض رضای خدا وقتش بود که دیگر با هم زندگی کنند. بیست و هفت سالش است. مادرم دو بسته کهی که وی و ساک دستی وسایل شوینده دستم داد و گفت هنوز دختر کچولی منی. نمی چه بگویم. من کیک که دوست نداشتم. خیلی راحت توی خانه پاتریک جا افتادم و وسایلم را جابجا کردم. پاتریک وسایل زیادی نداشت. من هم که بیشتر عمرم را در اتاق گوتی کبریتی گذرانده بودم چیزی نداشتم. فقط سیدی ها مشکل ساز شدند. پشت سیدی های خودم برچسب زدم. و قاطی سیدی های او کردم بعد همه را به ترتیب علف چیدم پاتریک بارها تکرار کرد فکر کن توی خانه خودت هستی تاکیدش میگفت که مهمان هستم هر دو عصبی بودیم و به طرز عجیبی رفتار ناشینهی با هم داشتیم گویی اولین قرار ملاقاتمان من است وقتی سرگرم جابجا کردن وسایلم بودم برایم چای آورد و گفت این لیوان دستدار مخصوص تو جای وسایل آشبازخانه را نشانم داد. البته بارها هم تکرار کرد، اگر خواستی چیزی را جابجا جا کنی، اشکال ندارد. جا لباسی و دوتا از کشوهای اتاق اضافی آپارتمان را خالی کرد. دو کشوی دیگر پر از لباسهای ورزشی خودش بودند. خبر نداشتم این همه لباس ورزشی از جنس پلیش و لیک را دارد. لباسهای رنگ وارنگم را در کمد چیدم. هر کدام یک رنگ بود، پایین کموت خالی مانده بود. چوب رختی های سیمی به طرز قمنگیز قیش, قیش صدا میکردند به کموت نگاه کردم و گفتم باید لباس بخرم و پرش کنم. پاتریک با حالت عصبی خندهی کرد و گفت این چیه؟ به تقویمم نگاه می که به دیوار اتاق زده بودم. ایده ها را به رنگ سبز نوشته بودم و برنامه هایی که قصد اجرایش را داشتم به رنگ سیاه. اگر برنامهای به خوبی پیش می رفت مثل کنسرت و شراب چشی که نره شکلی لبخند می گذاشتم. اگر خوب پیش نمی رفت مثل مسابقه سوارکاری و نمایشگاه نقاشی خالی می گذاشتم. برای دو هفته پیش رو برنامه های زیادی نداشتم. ویل حوصله این دور و اطراف را نداشت. از طرفی هم هنوز نتوانسته بودم متقاعدش کنم راه دور برویم. نگاهی به پاتریک کردم. می دیدم که توجهش به روز دوازده اوت جلب شده که کنارش علامت هشدار به رنگ سیاه بود مربوط به کارمه بر اینکه فراموش نکنم فکر می دوباره قرارداد داد پاتریک پاترک خودکار را از گیره تقویم برداشت به ماه بعد نگاه کرد و زیر هفته بیستم تونتون نوشت دوباره در جستجوی کار اینطوری آماده ای برای هر چیزی که پیش بیاد. مرا بوسید و تنهاییم گذاشت. قوطی کرم‌هایم را با دقت در حمام چیدم. خودتراش و مرتوب کننده و نوار بهداشتی را داخل کابینت آیندار حمام چپاندم. کتابهایم را روی کف اتاق اضافی زیر پنجره مرتب روی هم چیدم. از جمله کتابهای جدیدی که وید برای من به آمازون سفارش داده بود. پاتریک قول داده بود به محض اینکه فرصت پیدا کرد قفسهای ای کند. پاتریک رفت تمرین و من نشستم از آن منطقه صنعتی به قلعه نگاه کردم. زیر لب با خودم تکرار می کردم. خانه. آدمی نیستم که بتوانم توانم رازی را در دلم نگه دارم یا دروغ بگویم. ترینا همیشه میگوید وقتی فکر دروغ گفتن در سرم باشد دست روی دماغم میکشم با این کار در جا خودم را لو میدهم. پدر و مادرم هنوز یاد داشت هایی را که از طرف آنها برای مدرسه مینوشتم تا غیبت کنم به خاطر داشتند حرفش را میزدند و میگفتند و می, می خانم تروبریج عزیز لویزا کلارک امروز به مدرسه نمی آید. چون عادت ماهانه شوم و حالم خوب نیست. بابا هم با قیافه خشک و جدی شانه بالا میانداخت. در صورتی که انتظار میرفت دعوایم کند. حالا هم مخفی نگه داشتن راز ویل از خانوادم یکی از آن موارد بود. البته میتوانستم زبانم را نگه دارم و به پدر و مادرم چیزی نگویم. با این اخلاق بزرگ شدم. ولی اینکه بتوانم استراب و نگرانیم را بروز ندهم بحث دیگری بود. دو سه شب بعد را نشستم و به ویل و برنامه هایش فکر کردم. و اینکه چه کنم تا دست از تصمیمش بردارد. حتی وقتی هم با پاتریک می نشستم و گپ میزدم یا با هم در آشپزخانه کوچکش غذا میپختیم فکرم پیش ویل بود. چیزهای جدیدی هم در مورد پاتریک کشف کرده بودم. مثلا بلد بود با سینه بوغلمون صد جور قضا درست کند شبها کنار هم میخوابیدیم که اغلب به نظر می رسید اثر وظیفه است انگار حالا که کنار هم هستیم باید نهایت بهره را از هم ببریم حس میکردم پاتریک فکر می کند من یک جورایی به او بدهکارم چون بیشتر وقتم را کنار ویل می گذرانم به محض اینکه پاتریک خوابش می برد من دوباره غرق در افکارم می شدم. فقط هفت هفته باقی مانده بود و ویل برای سفر به سوئیس برنامه را را می کرد حتی اگر من نبودم هفته بعد نفهمیدم ویل متوجه شد که ذهنم مشغول است و نگرانم یا نه اگر هم شد چیزی بروز نداد روزها را طبق روال معمول می گزراندیم. با ماشین گشتی در اطراف شهر می زدیم مورد علاقه را می وقتی هم خانه بودیم به کارهایش می رسیدم حالا دیگر اصلا در مورد مرد دونده با من شوخی نمی کرد و سر به سرم نمی گذشت. آخرین کتاب هایی که توصیه کرده بود به خانم صحبت می کردیم. بیمار انگلیسی خوشم آمد و داستان پلیسی سعودی خوشم نیامد. رفتار میزی با هم داشتیم، خیلی هم رسمی و معدب بودیم. دلم برای توهینهایش و بداخلاقیش تنگ شده بود وقتی حرف بد نمیزد و بدخلقی نمیکرد به شدت احساس خطر میکردم نیتن مراقب هر دو نفرمان بود انگار با موجودت جدیدی روبرو بود روزی وقتی توی آشپسخانه بودیم به من گفت شما دو نفر تو کردیم؟ داشتم خریدها را جابجا میکردم گفتم بهتر از خودش بپرسیم اونم دقیقا همینو گفت زیر چشمی به من نگاه کرد بعد رفت تمام تا قفسه داروهای ویل را باز کند سه روز بعد از آمدن مایکل لولر صبرم را از دست دادم و به خانم ترینر زنگ زدم و خواستم جایی غیر از خانه همدیگر را ببینیم قرار گذاشتیم همدیگر را توی کافه کوچکی در محبته قلعه ببینیم از طعنه روزگار همان کافهی بود که با افتتاحش من کارم را از دست داده بودم. از کافهی که من کار می کردم شیکتر بود. میز و سندلی همه از چوب بلوت به رنگ سبز مخص ای سوپ خانگی سبزیجات و کیک های خوشمزه می فروخت. آنجا به شما قهوه معمولی یا فقط کاپوچینو و اسپرسو نمی دادن. خبری از کارگرهای ساختمانی یا کارکنان سلمانی نبود. نشستم و فنجان چای سر کشیدم. به خانم قاصدک فکر می کردم و دلم میخواست بدانم آیا دوست دارد هر روز صبح بیاید اینجا و روزنامه بخواند. لویزا هم ببخش دیر کردم. کامیله ترینر شتابان از راه رسید با بلوز ابریشمی خاکستری و شلوار سرمه ای. کیف دستیش از خم آرنجش آویزان بود مقاومت کردم تا از جایم بلند نشوم. همیشه وقتی میخواستم با خانم ترینر حرف بزنم حس می کردم یک جورایی دارم مصاحبه پس می دهم کارم توی دادگاه طول کشید شرمنده که شما از سر کارتون اینجا کشوندم من فقط اینکه که خوب کردم باید شما رو ببینم دستش را بالا گرفت و به گارسون چیزی گفت. روبروی من نشست. طوری به من زل زده بود که انگار می توانست از قیافم همه چیز را بخواند. ویل از یه وکیل خواست که بیاد پیشش. اینطور که من متوجه شدم متخصص در امور نامه و انحصار براسته. هیچ راه بهتری برای باز کردن سر صحبت بلد نبودم. به من زل زد مثل این بود که به صورتش زیلی زدند. تازه اینجا بود که متوجه شدم ولی دیر بود فکر کرده بود که خبر خوبی برایش دارم وکیل مطمئنی اسمش رو توی اینترنت پیدا کردم دفترش توی خیابون رجنت لندنه. بعد بی دلیل اضافه کردم مایکل لولر چند بار پلک زد ظاهرا تلاش میکرد معنی حرفم را درک کند ویل خودش بهت گفته نه گمون نکنم دوست داشته دو باشه من بتونم خودم اسمشو پرسیدم و پیداش کردم قهوهش را آوردند و مقابلش روی میز گذاشتند ولی خانم ترینر اصلا متوجهش نشد دختر گارسون پرسید چیز دیگه ایمین دارید؟ نه ممنون کیک حویجم داریم برای امروز خودمون درست میکنیم. خامه خیلی خوشمزیم. نه. لحن خانم ترینر محکم و قاطع بود. ماترکرم. دختر چند لحظه به همانها حال ایستاد میخواست نشان بدهد که ناراحت شده است. بعد راهش را کشید و رفت. دست کاغذ یادداشت در دستش تاب میخورد. گفتم. ببخشید. به من گفته بودیم که خبره مهمو به شما بدم. تا نیمایی شب بیدار بودم و فکر میکردم به شما بگم یا نه. رنگ از چهرش رفته بود. میدانستم چه حالی دارد. خودش چطوره؟ تو کاری هیچ فکر تازهی کردی؟ سفری؟ جایی؟ دوست نداره. در مورد سفر به پاریس و کارهایی که میشد حرف زدم. در تمام مدتی که من صحبت می کردم، پیدا بود دارد سبک و سنگین می کند و اوزار را می سنجد. سرانجام گفت به هر حال هر که خواستید برید من حزینه شو میدم. هزینه سفر تو نیتنم میدم فقط تلاش کن رازیش کنی. سرم را به نشانه تایید تکان دادم. اگه کاریم نبود که بکنی فقط کارتو ول نکن من حقوق بیشتر از شش ماهو بهت میدم واقعا موضوع نیست در سکوت قهوه من را خوردیم هر دو غرق در افکار بودیم زیر چشمی نگاهش می کردم. موهایش که همیشه آراسته و مرتب بود حالا رگه های خاکستری داشت چشمانش مثل چشم من گود افتاده و سیاه بود میدیدم حالا که موضوع را گفته و او را هم نگران کردم حالم بهتر نشده است اما چاره دیگری داشتم هر روزی که میگذشت به خطر نزدیکتر می شدیم. ساعت دو که اعلام شد خانم ترینر از افکارش بیرون آمد. باید برگردم سرکار. کار. لویزا لطفاً هر تصمیمی می گرفتی و برنامه داشتی بهم بگو. همون بهتر که توی خونه هم دیگر رو نبینیم. بلند شدم. گفتم. شماره تلفن جدیدم رو داشته باشی. من از خونه پدر و مادرم رفتم. دست در کیفش کرد تا قلم و کاغذ درآورد رفتم خونه ای پاترییک دوست پسرم. نمیدانم چرا از این خبر تعجب کرد یکی خورد بعد خودکارش را دستم داد. نمیدونستم دوست پسر داری. فکر نمیکردم باید بگم ایستاد یک دستش روی میز بود پاری روزویل گفت که شاید آخر هفته ها بمونی خونه ما شماره تلفن خانه پاتریک را نوشتم و کاغذ را دستش دادم گفتم: فکر کردم بهتر برم خونه پاتریک اما خیلی دور نرفتم منطقیه صنعتی هیچ تأثیری روی ساعت کاریم نداره و میتونم سرساعت خودمو برسونم همان جایست مسترب به نظر می رسید. دستی به موهایش کشید. بعد پایین آورد و زنجیر گردنش را گرفت. اما نتوانست بیشتر از این جلوی خودش را بگیرد. از دهانش پرید. چی می اگه این چند هفته رو هم صبر می کردی؟ ببخشید متوجه نشدم. ویل. فکر می ویل به تو دل بسته. لبش را به دندان گرفت. نمیدونم نمیدونم این موضوع واقعا چقدر میتونه کمک کنه ببخشید منظورتون اینه که من نباید میرفتم با دوست بسرم زندگی کنم من فقط گفتم وقت مناسبی نبود ویل توی موقعیت حساسی قرار داره ما داریم تمام زورمون رو میزنیم تا به زندگی امیدوار شه و تو من چی می دیدم که دختر گارسون توجهش جلب شده است. دست کاغذ یاد همچنان چنان در دستش بود. من چی؟ که رفتم تا جدا از کارم زندگیمو بکنم؟ صدایش را پایین آورد. لوئیزا، من هر کاری که لازم باشه میکنم تا مانع این کارش بشم. تو میدونی با چه مسئولیت سنگینی روبرو رو هستی. من فقط دارم میگم کاش با توجه به اینکه به تو دل بزده کمی صبر میکردی قبل از اینکه خوشبختی تو بکوبی توی سرش. نمیتوانستم چیزهایی را که می‌شنویم باور کنم. حس کردم صورتم سرخ شده. قبل از اینکه حرفی بزنم نفس عمیقی کشیدم. چطور به خودتون اجازه میدید بگین من کاری کردم تا به احساسش لطمه وارد کنم؟ من هر کاری براش کردم. هر کاری که از دستم برمیومد. بیرون بردمش، باش حرف زدم براش کتاب خوندم، ازش مراقبت کردم تمیزش کردم، سندش عوض کردم خندوندمش، خیلی بیشتر از خود شما بهش رسیدم کلمات آخر از دهانم بیرون پریدند خانوم ترینر همانطور ساکتی استاده بود صاف و مستقیم کیف دستی از خمه آرنجش آویزن بود دو کلارک بهتر این صحبت رو تمام کنیم بله خانم ترینر بهتره تمامش کنیم برگشتم و به سرعت از کافه بیرون رفتم وقتی در را پشت سرم محکم بستم دیدم می بعد از صحبت با خانم ترینر تا دو سه روز به هم ریخته بودم. حرفش همش در گوشم میپیچید پیچید. کمی سبت می قبل از اینکه خوشبختیت را بکوبی توی سرش. فکر نمی کردم کارهای من برای فیلم مهم باشد. وقتی دیدم از تصمیمم برای زندگی با پاتریک ناراحت شد فکر کردم چون از پاتریک خوشش نمی آید دلخور شد. اصلا به ذهنم نرسیده بود که حسی نسبت به من دارد مهمتر این که من هیچ خوشحالی خاصی از خودم نشان نداده بودم. توی خانه هم که بودم استرابم کمتر نمی شد. جریان آرامی بود که در سراسر بدنم جاری بود. با هر کاری که می تشدید می شد. از پاتریک پرسیدم اگه خواهرم به اتاقم احتیاج نداشت بازم این کارو می کردیم؟ به من خیره شد. انگار با آدم دیوانه ای رو بروزد. جلو آمد و مرا به طرف خودش کشید. سرم را بوسید و سرش را پایین انداخت. حالا مجبوری این شلوار راحتی و بپوشی؟ من بدم میاد. راحتم. <تص> <تص> این لباس خواب باید مادرم بپوشه. نمیتونم هر شب لباسی تنم کنم که تو خوشت بیاد. به سوالم جواب ندادی. <تص> نمیدونم. احتمالا آره. ولی هیچوقت در موردش حرفی نزده بودیم زده بودیم؟ لو اغلب افراد با هم زندگی میکنن چون کار خوبیه با کسی که آشقشن زندگی میکنن از نظر مالی هم به سود آدمه لطفا فکر نکن من اومدم چون از نظر مالی به نفهمه دوست ندارم در مورد این فکر کنی نفس عمیقی کشید و به پشت قلب زد آه. چرا زنها عادت دارن اینقدر از یک موضوع حرف بزنن و بزنن تا تبدیلش کنم به یه مشکل؟ من عاشقتم تو عاشقمی. نزدیک هفت سالم هم هست که با هم دوستیم. توی خونه پدرتم که اتاق اضافه نبود. به همین سادگی. نه به همین سادگی نبود. حس می کردم این زندگی که من دارم. چیزی نیست که انتظارش رو داشتم. تمام روز جمعه آسمان بارید. بارانی گرم و شدید. مثل مناطق استوائی نافدانها به زمزمه افتادند و ترکه های درخچه ها و بوته های گل به حالت استقاث سرخم کردند ویل مثل سگی که از پیاد روی محروم شده از پنجره بیرون را تماشا می کرد. نیتن نیتین می آمد و میرفت. کیسه پلاستیکی روی سرش می کسشت. ویل فیلم مستندی در مورد پنگوان تماشا کرد بعد هم سراغ کامپیوترش رفت من سر خودم را با کار گرم کردم و در نتیجه مجبور نبودیم با هم حرف بزنیم. ولی کاملاً حس میکردم هر کردم دو معذب هستیم. حضور در یک اتاق آن هم مدت طولانی وضعیت را بدتر میکرد. بعد کم کم متوجه شدم شستن و سابیدن مایه آرامشم میشود. نظافت کردم. پنجره ها را شستم. ملافه ها را عوض کردم. بیوقف کار میکردم. و یک لحظه هم نمی نشستم. گرد و قبار از چشمانم دور نماند، و لکه های چای از نگاه هم در امان نماندند. داشتم با حوله کاغذی آغشته به سرکه آهک روی شیرالات حمام را می بردم. که از مادرم یاد گرفته بودم. صدای صندلی چرخدار را پشت سرم شنیدم. چیکار داری می کنی؟ روی وان خم بودم. صورتم را بر نگردند. دارم درم شیرارو برق می دزم. سنگینی نگاهش را حس می کردم. دوباره بگو چی؟ دوباره بگو چی گفتی؟ کمرم را صاف کردم و ایست دادم. چرا؟ گوشت ایراد پیدا کرده؟ دارم شیرارو برق می دزم. نه ایراد پیدا نکرده فقط میخواستم خودت بشنوی چی گفتی کلارک هیچ نیازی نیز شیرها رو برق بندسی مادرم اهمیت نمیده من هم همکاری ندارم همون بوی گند ماهی فروشی گرفته گذشته از اون میخوام برم بیرون دسته مو رو از صورتم کنار دادم راست میگفت همون بوی گند ماهی فروشی میداد بیا بارون براخره بند اومد الان با پدرم حرف زدم گفت که ساعت پنج کلیده در را میده به ما همین که خلوت شد فکر نمی کردم روابط اینقدر حسنه شود که بتوانیم موقعی موقع قدم زدن در محبتی قلعه با هم معدبانه حرف بزنیم با این حال از خانه بیرون رفتن فکر بدی نبود خیلی خوب فقط پنج دقیقه فرصت بده باید بی سرکر از دستم ببرم